و آله الطاهرين الطاهرین سیما الله في اردن روحی و ارواح لتراب مقدمه فدا و لعنت الله على اعداءهم جمعین من الان إلى غیام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بلایت أمير المؤمنین عليه السلام والایمه المعصومین علیهم السلام در پیشگاه مولانا و مقتدانا صاحب العصر و زمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون صلواتی تقدیم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ادامه مبحث امام شناسی با سبقه غیر کلامی و ترجیحن امام زمان شناسی با همین سبقه که دیگه در جلسات پایانی انشاءالله موضوع با اطربوی حضرت انشاءالله ادامه پیدا کنیم. خیلی جمله ارز کردیم که امام شناسی با تمام صفات امام حتی صفاتی که به عنوان علامات الامام و خصائص الامام نیومده. ولی صفات امام معصومه ای که دیشب مثلهایی ارز کردیم که حضر بفهمن ما و میجنی مجرایه اناممای اجر ما و امامان همانند ما باید بر جنازه‌ی شما حاضر بشیم خب این جزو صفات خاصه امام معصوم نیست ولی دانستن این مطلب در امام شناسی خیلی تاثیر گذاره یعنی جذابیتی که در ذهن شیعه معتقد به امامت ایجاد میشه در اثر این نکته ها خیلی رشد میکنه و خیلی اوج میگیره به عبارت دیگه ارز کنیم تمام فضائلی که اهل بیت برای خودشون بیان کردن، در این بحث قرار میگیره. یعنی ما ناخودآگاه، اومدیم بحث فضائل رو جدا کردیم از این مواحث. بحث, بحث, بحث, بحث امام شناسی می‌کنیم، اگر فضائل میکنیم، خب اونا که فضائله، من کتاب فضائل ننویشتن. من میخوام خب امام رو باید. مع... خب خودشون اینجوری خودشون رو معرفی کردن؟ خودشون اینجوری معرفی کردن، یعنی که به آن فضیلت فرمودن معلاش این نیست که این امام شناسی نیست فضائل امام معصوم علیه السلام هم بخشی از هویت این وجود نازنینه بخشی از شناس نمشه. لذا تو معرفی ها میبینیم به این فضائل میپردازن من عرفنی فقط عرفنی و من لم يعرفني علی علي بن حسين روزه شون تو کوفه میخورن در شام معرفی میکنن حتی همونجا هم که میخوان خودشونو معرفی کنن با عباراتی مثل انا ابن مکه و منو انا بنو زمزم و صفا مکه و که بچه نداره که زمزم و صفا که بچه نداره که مردم یه مرتبه با این تعبیر تکون میخونن که من بچه مکه و منایم. من بچه زمزم و صفایم. شما خیام میکنیم با کی با اجنبی با اصیر خارجی طرفی نه ما. این کاره هستیم. هرکی نمیشناسه ما رو بشناسه. و از اون فرصتی که معذن ایجاد میکنه که برای هم زدن میگه از آن بگو. ولی حضرت همین تهدید رو به قول آنه تبدیل رو فرصت میکنن و خودشون رو معرفی میکنند. حالا معرفی برای شامی هست. معرفی به شامیی که فکر میکنه پیامبر، اهل بیتی جز یزید و خاندان یزید نداره. این هستگی در منابع. چنان شستش روی مغزی در شام توسط معاویه و از ناب معاویه صورت گرفته که وقتی اهل بیت خودشون رو معرفی میکنند میگن ما فکر نمیکردیم کردیم اسلام اهل بیتی غیر زیادی نام داشته باشه که شما دارید ما اون اهل بیتیم. ما زبق قرباییم. ما آیه تطهیرین. خب این معرفی معرفیه برای شامی قریبه است. اما معرفیه در عباراتی مثل انبن مکه و امنا اینا دیگه سطح میبره بالا یا نا دقیقه این چرا؟ این آقا مگه کیه؟ این آقا اگه زمینیه چرا اینجوری صحبت میکنه؟ یه مرتبه متوجه میشن. خب من لمیعرفنی کلی فضای ارتوالتی بعض از نقل که خطبت رو مفصل و طولانی نقل کردن به کلی از فضای الامیرامونی علیه السلام هم درش پرداخته شده. خود امیرامونی در ما فاخره. در مفاخرهایی که دارند با سقیفه یا و امثال اینا چقدر فضیلت برای خودشون و برای اجلادشون، اماهاشون، برادرشون بیان میکنن و این معرفی ها با فضائل معناش این نیست که اینا هویت ما نیست. هویت امام معصوم علیه السلام مجموعه از صفاتی که در علم کلام ثابت میشه به علاوه صفاتی که در روایات با عنوان علامات الامام مطرح میشه که احیانا در کتب کلامی مطرح نشده و به علاوه تمام فضائلی که به هر بحانهی در سیره مبارکشون شکل گرفته یا بیان شده همه فضائل جزب خوبیت محسوب میشه و تأثیر این نوع معرفت امام اینی که وقتی شیعه میفهمی چه امامی داره میگه هر کس به کسی نازد من هم به علی نازم اون امامی که عرضش نازیدن داره ارزش افتخار داره نه اون بیسر و پایی که دیگه دیشب اشاره ای کردیم که به چیشون میخوان افتخار کنن غیر از همون فضایل خاصه که در محل خودش. حالا سبقه بحث رو بعضی از دوستان هم پیشنهادش رو دادن و به جا هم هست. با سبقه امام زمان علیه السلام بخواهم ادامه بدیم. خب همه مباعث امام شناسی در مورد حضرت هم جاریه. بنابراین تمام مباحثی که به عنوان معرفی امام معصوم، هویت امام معصوم، سیره امام معصوم، فضائل امام معصومات رو میشه برای امام زمان علیه السلام هم از اما به نظرم اشاره کردیم روز جمعه، شام جمعه که بخشی از این فضائل مخصوص حضرت بیان شده رو از تکول خدمت او ایام حیاتی این معرفی امام زمان هم هست امام شناسیه یعنی او چه جایگاهی داره اون کسی که امام صادق علیه السلام چنین جمعه در بارش فرموده باشه یعنی تعبیری چنین از حجت خدا کسی که مذهب به نام او مزین شده مذهب جعفری نامیده شده به نام او و در در اثر خدمات علمی حضرت به مکتب تشیع جعفری مذهب شدیم جعفریان فاطمیان چه لقب شنگینی که اونا عشقشون دارمد وقتی گفت جعفریان فاطمیان چون میدونستن ارزش جعفری بودن رو به هر حال حالا سبقی که باز به خصوص در مورد وجود نازنین حضرت بقییت الله علیه از فدا این بحث رو قنیتر میکنه اینه که مثلا وقتی نفر میفهمه شیعه امامی داره که یک پیامبر قلول از مثل حضرت ایسای مسیح علا نبینا و و علیه السلام باید بیاد پشت سر او به نماز بیسته معموم نماز جماعت امام زمان علیه و السلام خب این وقتی بازگو میشه برای خیلی ها درست هست برای خیلی ها یک چهره خیلی والاتری رو از حضرت به نمایش میگذاره این آقا چه کسیه مهدیس آن که وقت نماز جماعتش ایسا به صد نیاز به او اقتدار کند. چطور تو مسئله ولادت امیر المعنی یه باقایسه ای می میکنیم اونجا هم همینجور مادر ایساز مسجد شد برون مادر مولا به کعبه رهنمون. چقدر فرقه. اون یه از مسجد برو. در اخلستانی حضری الهی که به جز این نخله در دا ساقه دارهی که رتباً ولی این بانون رو دعوت میکنه بیا تو خونه حق بنایی را که ابراهیم کرد و ولید بیت خود تقدین کرد وارد بیت خدا شد فاطمه قبل را قبل نما و شد فاطمه وقتی این فضائل رو در مورد امیرمان این بر برمیکن اینا امام شناسیه نه اینکه خیال کنم این فضیلتیه خب فضائل بخش مهم از امام شناسی امام با همین فضائلش امام معصومه. نه اینکه این فضائل بحث جداگانه ما امام شناسی داریم میگیم امام شناسی یعنی بخشیش یعنی دانستن این فضائل ملک این فضائل آسمانی این فضائل الهی وقتی به یه نفر گفته میشه که شیعه امامی دارد امام آخرین شیعه امام آخرین شیعه مقتدای عیسی مسیح، او باید در نماز پشت سر رو قامت بنده. چه آقاییه که عیسی و نیاز به او اقتدا کنه خب اینم میشه امام شناسی اینم میشه امام زمان شناسی یا مثلا وقتی که میفرمایند یم الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت و جورا اون جمله اولش که دقت کنیم یه آقای قراره پر کنه زمین رو از عدالت و قسط یعنی کسی که چنین جایگاهی داره او داره محصول تمام رنجهای انبیار رو به نمایش میگذاره او داره درو میکنه حاصل رو و او به عنوان خاتم و اوصیا آخرین نور از این قبیله نور او وقتی میاد باید دیگه تمام برکاتی که در سقف کتاه دنیا ممکنه باید همه به ظهور برسه. باید چنان امنیتی در آدم فروا بشه که زنی از شرق آدم به غرب آدم بره تکتا هم همراهش باشه هیچ کس متعرض نشه. چنین نوید امن و امانی در دولت حضرت در دعای افتتاح ساله بدشته به که از اشاره کردیم اللهم اینو نرقب و ایکی فی دولة کریمه، دولة کریمه، تعبیر بر اسلام و اهل و تذل بر نفاق و وقتی از دولة امام زمان السلام صوبت می‌برد امام شیعه، یعنی بقیه اهل در درکنجه قربت و مظلومیت، شما مردم عالم ندیدین دولة انارو، ندیدین ازله انارو. یک نفر از این قبیله نور مونده که او به نمایش خواهد گذاشت این عزت رو حالا غیر از امیدی که ایجاد میکنه برکات جانبه دیگری که داره امام زمان عزیزان با همین دولتی کریمش هم معرفی میشه میشه این بحث امام شناسی و وقتی از این برکات صحبت میشه که او ادالت گستر عالمه امیرالوانی تجسم عدالت هستند. عدالت امیرالوانی زربال مسئله. قریبه باش آشنا شدند. چه برسی به خودی ها؟ ولی امیرالوانی آنگستان نتونستند عدالت گستدی کنند. این سقیفه نگذاشت. سقیفه با پامال کردن قدیر. امام معصوم رو به کنجه، حضلت و خانه نشینی کرد. ولی یک نفر، از این قبیله نور قرار این رسالت رو اهتدار بشه قرار این عزت الهی عزت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سایه دولت کریمه او برنمایش در بیاد و قرار او معزز الاولیا و مذلل اعدا باشه همین صفاتی که به عنوان استقاسه در دعای نود بمرتحه شده همین رو بخشی از امام شناسیه همین موازدال اولیا، اما زل و لعده میشه امام زمان شناسی که اون موازدال اولیه اولیا در قربت و مظلومیت تا زمان او او باید قربت زدایی کنه مظلومیت زدایی کنه او برای انتقام اومده او قراره خونی که جوش و خروشش آرام نمیشه با دست مبارک او با شمشیر مبارک او آرامش پیدا کنه که در روز لا کن و دمی والله هم داره دیگه طبقه اون نقلی که هست. تا وقتی ظهور نشه خون من آرام نمیشه آرامش خون سید و شهدا در شمشیر حضرت بقیات الله و فدا خوب میشه امام شناسی که او مظلوم است او وارث همه مسئولیت‌هاست و او انتقام و تقاص بهر الله الموتور رو او باید انتقام بگیره این خون انتقامش گرفته نشده خب اینا در کتب کلامی بحث نمیشه که بحث امامت در کتب کلامی که نمیاد به بحث معزل اولیه پردازه، به بحث انتقام به پردازه که او وارث همه خون هاست. به بخشی میپردازن در قالب امامت به صورت کلی و نصوص رو میارن مثلا که اینا امام معصومن. اما اونجا نمیارن که لَوْ عَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ ایام حیاتی. یعنی اون بحث رسالت اون کتاب ها و اون علمای بزرگوار رسالتشون این نیست، اونها حد محدودی از بحث امامت رو برای بستان دهان سنیها برای معرفی امامت در مکتب شیعه بیان می کنند که امامت اینجوری نیست، لا ی نالو عهدی از ظالمینه امامت احدالله احدالناس نیست، اجماع امت نیست مباعث کلامی امامت بیشتر برای یدن مشتلی بردهان یا بگویان صعیف است که امامت رو لوس کردن خلافت رو لوس کردن خلیفت الله رو چنان جره کریه ازش درست کردن که مجبوریم در مباحث بگیم پیامبر اونا امام اونا خلیفه اونا ولی پیامبر ما امام ما خلیف این جور سفای داره پیامبر اونا اشاره کردیم دیگه دیشب به نمونایی، اون سبکی بشری عصوانین میشه، فحاشی میکنه، لعنه بیجا میکنه، پیامبر ما در اونج قدا سرد، مندکل علا خلق عزیم، اینوالله وحیون، یوها، لولاک لما خلقتل، افلاک، چقدر تعریفی که از پیامبر ارائه میشه، باز نه در کتب کلامی، در دل روایات، چون روایت، متکفلی این داستانه روایات چهره پیامبر رو این اینجور زیبا حدیث کسا حالا کسی اگر در مثلا این مت بحثی هم داشته باشه مضمونش که بلا تردید در روایات ما تأکید شده و حدیث کسا نماینده یک معرفت خیلی مهم و زیباست که عالم همه تو هست توفعیلی اهل بیت نور علیه مصد. خودش امام شناسیه که در عالم مخلوقات اسیل جز محمد و آل محمد صلی الله علیه و علیه و سلم کسی دیگری نیست. مال الله آیتون اکبر و منی آیت از مای آفرینش امیر المؤمنین علیه السلام انه نبه العظیم وقتی خبر بزرگی خدا امیر المومنه خبر بزرگی خدا حبت الله تعبیر بر جذبت هستی حبت الله حدیه خدا به پیامبر امیر المومنه اصلا معجزه پیامبر امیر المومنه من عدیب الله و علیان عدیب خب وقتی اینجوری میریم سراغ ما مباحث پیانبر شناسی و حالا دوستانی که اونجا میان حتی خدا شناسی حتی مباحث آداشانسی با این سر خیلی چهره خدا متفاوت میشه خدایی که در معارف اهلوی چهرش تصویر سازی میشه اونقدر زیبا و قشنگه اونقدر دوست رشتنیه که هر کسی که منصف باشه، سر صفر این معارف، سر تعظیم فرود میاره که این چه خدای قشنگی که امیر المامونی، امام سجاد، امام صادق، سلامون علیم دارن معرفی میکنن. پیام برشناسی هم همینه، امام شناسی هم که حالا بحث این محفل هست، اینم هم همینجوریه. پس امام زمان علیه السلام با یملوال عرض قسطن و عدلا هم، معرفی میشن. و این بخشی از شناسنامه حضرت نه خب اینا آقا صفات مثلا کارایی که از انجام میدن خب کارهایی که از انجام میدن امام مگ... کار نیست، امام معصوم حفاظت از قوانین شهر تبیین دین قرآن ناطق خب اونم هم همین اون افعاله دیگه همین افعال همین اون جنگی داشت یک ضرب شمشیر ضربت یا یوم الخندق، افضل من عبادت سغلین. نگیم این کار امیرامونه که این هویت امیر المومنیه. که یک ضربه شمشیرش از عبادت جنویست بالاتر پس عبادتش چیه یا اصلا؟ آن بطور فرقه ضربه شمشیرش هم عبادته. برای امیرامونه تمام نفس کشیدنش هم، شمشیر زادنش هم، خندش هم، شوخی کردن هزرت هم عبادته. تک تک افعال این بزرگواران همینجوری خب اینا مباخصی که ضرورت داره بچشیا وقتی امامشان رو چه کار میکنن همه این مباخص در ضمن همون بحث های عقاید بشنوه نه اینکه بگن این نه واسه فضائل تو کدو به فضائل اگه دوست داری برو باطاله کن اگه دوست داره فضائل بخونه اگه نه اینو برای منبر مثلا فضائل میگن شب ولادت ها خوبه اینو برای منبر نه خیلی. اینا چوزه امام شناسیه اینا تو همون درسنامه های امام شناسی باید مطرح بشه اینا خیلی تاثیر داره در گرایش یا افزایش محبت و ارادت و نوکری نسبت به ساعت مقدسه مرسومه دولت امام زمان علیه السلام یکی از اینه که حضرت دست مبارکشو بر سر مؤمنان میزده و اقولشون رو بارور میکنه. نگیم این یه کرامته. حتی همون بخشی که حضرت اون دو نفر رو از قبر بیرون میکشن اونم باز بحث روزعی و مثلا اینا نیست. اون بخشی از امام شناسی که امام نسبت به سقیفه چنی؟ موزه داره امام سلمه قرش رو باید پیش چشم مردم عالم مجازات کنه هرچند این مجازات مجازات اصلی نیست و حتی حالا این میگیم تو دنیا حتی روایات مثل اول کم و ما يحكم هم محسن و نعدی سلام و الله علیه موافقات علی زما فیقوم فایاتیان بزبانه بسیات منار حتی اون روایات هم تو همین سلخ مباعث قرار میکرد که باید معلوم باشه که حضرت زهر سلام الله علیه فاطمه شناسی خودش فقط بریم بگیم آقایشون فرمودن که مثلا دختر پیامبرن و بوی بهش ازشون استشمام میشده یه چند تا معروف پیامر از مسافرت می آمدن رفتن و از بیشون سر می زدن و نهایتش خیلی هم لطف کنیم مثلا آیه تطهیرم در خونه ای اینا نازل شده بود اینا اصحاب کسا هستن نه بی بی با همه یه فضائلش شناخته بشه تا فاطمه شناسی محقق بشه حتی فضائل ریز حتی فضائلی که مربوط به سهره قیامته و یکی شمین روایت که او قاضیه دادگاه خداست یعنی خدا وقتی میخواد تکلیف عبادش رو روشن کنه حکم حضرت زهر رو باید نظر بدن حکم حضرت زهر باید صادر کنند فحکمیفیه به ما احببت عبادت کامل و زیاد با با فحکمیفیه به ما احببته یعنی اصلا هر چی؟ دوست داری حکم شما حکم الله هستی شما دوست داری صادر کن امضا شده است اختیار با شماست این در معرفت حضرت زهرا باید حتما بیاد و لحاظ بشه امام زمان عزیزان یکی از زبایای معرفتیشون اینه همون گونه که در معرفی جوادالعیم عزیزان این صحنه باید بیاد که تبرای جواد عزیزان در سن نصد سالگی اینجوریه اون نفر رو به خدا قسم از قلب بدنشون رو اتیش میزنن که ما چطور از رحمت و مهربانی امیرانوانی صحبت میکنم میگیم این یک ویژگی مردم آنم بفهمن چه امام یتیم نوازی امام شیع است؟ چه امام دقدق مندی نسبت به فقرا، نسبت به مظلومان نسبت به کسانی که حقشون پامال شده صحنه جهاد و جنگش یه جور چشمها رو خیره کنه صحنه یتیم نگاریش یه جور صحنه عبادتش یه جور تمام صحنه‌های زندگی مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام همین جور نظرها رو به خودش معطوف کنه اینا امام شناسیه با تمام زوایاش به همین منوال درباره حضرت زهرا سلام به همین منوال درباره امام زمان علیه السلام همین جمله امام صادق علیه السلام به عنوان امام زمان شناسی باید تابلو بشه و تابلو بشه که ارز کردیم اگر هیچ فضیلت دیگری وجود روازنین امام زمان حساب نمی داشتن جز همین یک روایت امام صادق کافی بود کافی بود که مقام منزلت ایشون بعد از واس امام ها بشه و روشن بشه و حال اون که پرش فضائل هم سلام علیکم و رحمت الله پس اینا رو نکنین یعنی تصور نکنیم که فضائل و مناقب و سیره و رفتارها و اتفاقاتی که میفته همینی که در دولت ارزد چنین حالت امنی ایجاد میشه؟ خب این در دولت امام زمانه دولتی کریمه اوس عزت اسلام تو عزه بر اسلامه و احله. و تا بر نفاقه و احله. این خیلی فضیلت مهمیه برای حضرت که خدا چنین امری رو به ایشون سپرده چنین امری رو خدا گداشته برای این وجود نازنی. که منتعا علیه موادیس انبیاه بشن امام زمان علی السلام تمام یادگارها ها باید بیاد دست ایشون برسه تمام شاخص ها باید در ایشون متجلی بشه و این نمونایی که عرض کردیم یه شمه ای از این امام شناسی با وسعتی که عرض کردیم خب بس باشه تا شاال الله ذکر توصلی و دوستان دیگه فاازات خودشون رو بفرمایند یکی از جاننسوس ترین صحنه های کربلا ها صحنه آمدن نازدانه عبا عبدالله کنار بدن می داره. اون جمله معروفی که اینجوری مگاه تحبیر کردیم آخرین حدیث عبا عبدالله آخرین روایت راوی روایت نازدانه عبا عبدالله مکان روایت گوری قتلگاه زمان روایت ظهر آشورا و متن روایت، حالا مرحوم کفعمی همون یه بیت و اولش رو فقط نقل کردن، لذا چون منبع ظاهرا همین بزرگوار هست که تعبیر اینه که حضرت سکینه سلام الله علیه ها اومدن و بدن بیشتر بابا رو در آغوش گرفتن، یه جانسوزی همین سحنه که یه دختری بیاد بدن بی سر باباب شده در خوش بگیره یه دختر سر بابا را در آغوش گرفت یه دختر اومد بدن بی سر را در آغوش گرفت بعد در اون حالت اقما اقمی علیها تو حالت شنیدن که شیعتی ما ان شربتم ری از بین فزکرونی او به غریب او شهید فندبونی بگذارید برای پدرم گریه کنم <تصفيق> بگذارید برای پدرم گریه کنم خاک مقتل به فشانم به سرم گریه کنم سر اون را که بریدیم تنش را بدهیم تا یه تیمانه بگیرم گریه و یکی از سحنه های جمسوز همین لحظه پیراهن ارزش غارت به خدا هیچ نداشت تنه آریان پدر را نگرد گریه کنم چه کردن با نازدانه داشت مجلس از بابار بابا رو گرد میکرد داشت برا بابا از آداری ت باید از نقلها داره، ام، ببین اجازه میدن من کربلو بمانم، برابریم از آداری کنار، فجتماد عدتهم من اقرار، و مبریدم که در این دشت مرا کاری هست گل اگر نیست ولی سحنه گلزار solo rege در da da da da ترا، da جسم بینشان da بابا با نشان نداشت اولین نشان سر, سر که در بدن نبود اونقدر نزده شکسته و اونقدر جراحت و سنگ و چوب و اصاب. بدن قابل تشخیص نبود امه به پا نداشت ازاید به کربلا آری پدر ببرش که امه امان نداشت آری پدر ببرش که کامن امان ندوز یا رب الحسین به حق الحسین اش صدر صبر الحسین ب ظهور الحجان یا رب فاطمه به حق فاطمه اشف صدر فاطم بظهور الهج يا یا رب الهج بحق الهج جن ش صدر بظهور الهج فرج عنه فرج عن عاجلا قريبا و فرج عن جمیع شیعته و حیر و میتن سیم المنظورین من عام بجا محمد و آلها الطاهرین